اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و عليه و بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و الله آلله الله ایلا الله وحده لا شريك الله و نصلي و نسلم على حبيبه و نجيبه في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذير سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابل قاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعسومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على اعدائهم مجمعین من الان إلى قيام يوم الدين عباد الله وسيكم ونفسي بتقبل الله قال مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلين فعليكم بتقبل الله عز وجل فانها تجمع من الخير ما لا يجمع غيرها و يدرك به الخير ما لا يدرك به غيرها خیر دنیا و بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم وجود مقدس مولای من، امیر مؤمنان، علی علیه الصلاة و السلام در این سخن بسیار ارزشمند درباره تقوا چنین می‌فرمایند: می‌فرمایند بر شما باد به تقوای الهی تقوا را پیش کنید چون تقبا دارای دو ویژگی کلیدی و اساسی است اولین ویژگی تقوای این است که تقوا این ظرفیت را دارد و میتواند جمع کند خیرها و برکاتی را که هیچ چیز دیگر نمیتواند این کار را انجام بدهد مجموعه خیرها و برکات را تقوا می تواند جمع کند ویژگی دوم این است که چیزهایی به وسیله تقوا و خیرهایی به وسیله تقوا به دست می آید که به وسیله چیز دیگر به دست نمی آید ممکن ما اسباب دیگری برای به دست آوردن خیر داشته باشیم اما خیری که توسط تقوا و به وسیله تقوا به وجود میاد و به دست میاد توسط اسباب دیگر به وجود نمیاد و بعد اضافه میفرماید خیر, خیر دنیا و آخره خیر دنیا و آخرت در پرتو تقوا به دست میاد ما در خطبه اول در هفته های گذشته پیرامون فریزه امر به معروف و نهی از منکر مباحثی را مطرح کردیم و آخرین بحثی که مطرح شد تحت عنوان پیامدهای اجتماعی ترک امر به معروف و نهی از منکر بود ما چندین پیامد و اثر در رابطه با ترک امر به معروف و نحی از منکر مطرح کردیم امروز سرفصل دیگری را در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنیم که به نظرمون میرسد این سرفصل نیاز جامعی امروز ماست و اون عبارت از بیان مسادیق معروف و منکر در جامعه ما زیرا هم اولویت های امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم به اساسی است ما معروف های فراوانی در جامعه داریم که ما این منکر های فراوانی در جامعه داریم سخن این است که از نظر اولویت به کدام یک باید بپردازیم در مرحله اول؟ یعنی رتبه بندی کنیم مرحله بندی کنیم بگیم اینها اولویت های ما در رابطه با امر به معروف اینها اولویت های ما در رابطه با نهی از منکر هست خود این موضوع کمک می کند برای آمران به معروف و ناحیان از منکر که در مواجهه با معروف ها و منکر ها چگونه رفتار کنند منتهای های مراتب من فکر می کنم به جای که الان ما یک فهرست بالا بلندی از معروف و منکرها را مطرح کنیم بهتر این است که ما معیارهای معروف معیارهای های منکر را اول تبیین کنیم که اساسا معروف ها بر اساس چه معیار بر احساس چه زابطه و بر احساس چه ملاکی هستند یعنی چه معیار و زابطه ای چیزی را معروف می کند و چه معیار و زابطه ای چیزی را منکر جلوه می دهد احساساً بیان زابطه های کلی و قاعده های کلی می تواند مسادق متعددی را تحت پوشش این زابطه و قاعده قرار بدهد که این به عنوان یک نکشه کلیدی و اساسی است هم فهم مصادیق را برای ما آسان تر می کند و هم در نتیجه دیدگاه های افراد را نسبت به معروف و منکر به هم نزدیک می کند افراد دقیقاً معیارها را نگاه می کنند و تحت پوشش این معیار افراد میگن این قاعدتاً باید معروف جامعه باشد و این باید به عنوان منکر در جامعه مطرح شود من در اینجا در آغاز یک مثال اقتصادی میزنم که در رابطه با این مثال اقتصادی و قرار دادن یک ظابطه و ملاک برای این مسئله اقتصادی مشخص میشود که آیا اون چه در جامعه رخ می دهد و اتفاق می افتد تحت پوشش معروف است یا تحت پوشش منکر هست. به عنوان نمونه اگر ندانیم مثال اگر ندانیم خرید فلان کالای خارجی ما نمیدانیم آیا این کار درستی هست یا نه؟ یا به تعبیر روشنتر معروف و کار خیر و نیکی است که ما انجام می‌دیم در خرید کالای خارجی یا خرید کالای خارجی کار نادرستی است که به عنوان منکر شناخته می‌شود ما این را تحت پوشش یک ضابطه کلی و یک قاعده کلی قرار می‌دهیم و اون ضابطه کلی و قاعده کلی عبارت از این هست که ما میگیم این خرید کالای خارجی به عنوان یک مستان که در جامعه انجام می شود آیا در رابطه با مسئله وابسته شدن کشور ما به بی بیگانگان یا وابسته نشدن کشور ما به بی بیگانگان در رابطه با تولید ملی در رابطه با تأثیر روی اشتغال در جامعه ما این خرید کالای خارجی البته در جایی من مثال می زنم که به عنوان تبادل نباشد بین کشورها که این اتفاق بر اساس یک مبادله بین کشورها اتفاق بیفتد اگر بر اساس مبادله باشد معناش نیست که وابستگی اینجا نیست معناش این است که رو تولید ما اثر نمی چون جنسی را به بیرون می‌فرستیم و جنسی را وارد کشور می کنیم. در این گونه موارد تأثیر منفی تو جامعه ندارد اما اگر صرفا ما مصرف کننده یک کالای خارجی شدیم و کالای خارجی را وارد کردیم محک ما، زابطه ما، قانون ما، ملاک ما و ما این است که چه مقدار این خرید در تولید ملی ما در اشتغال افرادی که در یک کارخانه مشغول کارن تأثیر گذاره آیا باعث می شود که این کارخانه به تعطیلی کشیده بشود؟ باعث می شود که تولید ملی ما رنگ ببازد و از بین برود حتی اگر چنین این حالتی پیشاید تردید نکنید اگر پای زرر به کشور، زرر به جامعه، زرر به آهاد جامعه وارد بشود، این خرید کالای خارجی در فرهنگ دینی ما یه امر منکر است. بنابراین ما معروف منکر را نرویم در یه سلسل مسائلی که الان تو جامعه ما مطره، و دم دستیست اینها را به عنوان مسائل معروف و منکر مطرح میکنیم نه معروف و منکر تو مسائل اقتصادی مطرحه معروف و منکر تو مسائل سیاسی مطرحه معروف و منکر تو مسائل اخلاقی و سایر مسائل مطرحه بنابراین این به عنوان یه معیار یا مثلا جنس نامرغوب اگر یه کارخانه تولید کرد که این نامرغوب بودن باعث شد که جامعه به سمت کالای خارجی گرایش پیدا کند نفس تولید جنس نامرغوب در یک کارخانه منکر است اینا به عنوان یک منکر باید شناخته بشود کارخانه ای که جنس بنجل تییه می کند که با مذاق جامعه ما سازگاری ندارد گرایش جامعه ما به سمت کالای خارجی می روید. نفس این کار کارخانه و مدیر کارخانه ی کار منکری است که انجام می گیرد بنابراین اگر زابطه ها برای ما روشن شد مسادی خود به خود یا تحت عنوان معروف قرار می گیرد، یا تحت عنوان منکر قرار می گیرد اینا نقاط است که اگر خوب تدگین بشود برای جامعه ما خود به خود آهاد جامعه ما میتونن به نتیجه برسن و نتیجه گیری کنن مثال دوم بنوان یک زابطه باز ارز کنن. اگر حرکتی در جامعه کاری در جامعه باعث بازدارندگی ما از حرکت به سمت مسیر الهی باشد ما را در جا متوقف کند مسیر الهی را کن کند هر اقدامی که در جهت کن کردن حرکت ما به سمت مسیر الهی باشد اون کار به عنوان منکر است و هر اقدامی که مسیر ما را پرشتابتر در رابطه با رفتن به سمت راه خداوند و مسیر الهی و قیامت و امثال زالک باشد این به عنوان معروفه لذا شما تو قرآن نگاه کنید از لحب و لعب و امور باطل سخت قرآن سرزنش کرده ما میگیم لحب و منکر است ما میگیم این اموری که ارشوت خدمتون انسان را از یاد خدا غافل می کند منکره چون اینا بازدارندگی دارد برای رشد و کمال جامعه هر کاری که تو جامعه باعث بازدارندگی ما باشد جلوی ما را صد کند غنات مثل الله ان با بازیه است فرقم نمیکند از صدا و سیما پخش بشود یا به عنوان تئاتر باشد یا به عنوان مجلس دیگری باشد نفس این جلسه از اول تا آخر بینندگان و شنوندگان تحت تاثیر قرار بگیرند و در حقیقت یاد خدا و مسیر الهی برای آنها به غفلت قفلت بشود آیه در قرآن خیلی تعبیر جالبی دارد می فرماید تخدو دینهم لحظه و لعب و جرّتهم الحیاۃ خیلی جالبه. میگه کسانی که با لحب و لعب سر کار دارن به گونه ای که دنیا اونها را مغرور میکنه. به سمت دنیا گرایی میل پیدا میکنن. فالیوم یعنی روز قیامت ما این را فراموش میکنیم. چرا فراموش میکنیم؟ که ما نسو لقاء یومی همهازا اونا چون سرگرم اون لحب و و امثال زالک شدن از یاد قیامت غافل موندن از یاد خدا غافل موندن امروزم که در پیشگاه ما محشور می شوند. یعنی روز قیامت همون گونه که اون روز اونها ما را فراموش کردن ما هم امروز که روز حساب و کتابه اونها را فراموش خواهیم کرد بنابراین معیارها و ملاکها را بعد نظر قرار میدیم من در ان شاء های آینده بعضی از معیارها و ملاکهای های دیگر را بیان میکنم تا اون جایی که مقدور بعد میرسیم سراغ مسادق مهمتر و مسادیقی که در اولویت هست در رابطه با معروف و منکر که متناسب با نیاز جامعه و فضای جامعه ما باشد ان الله یامر بالعدل و و ایتا القرب القربا و ینها ان الفحشای و المنکر و کم تذکرون پروردگارا ما را با وزائف آشنا بگردان در فرج مولایمان من بفرما به امام من روح و رزوان انایت بفرما پروردگارا مراجع گذشته ما را مشمول رحمت واسعت قرار بده به رهبر عزیز و گرانقدر انقلابمون عزت سلامت طول عمر با برکت مرحمت بفرما به مراجع بزرگوار تقلید ما ازت سلامت انایت بفرما به این مردم خوب ما پایکار ما همراه با انقلاب ما ازت دنیا و آخرت مرحمت بفرما پربدگار را به نسل جوانمان این امیدهای من غیرت دینی عنایت بفرما به های مکرم شهیدانمان صبر و اش کرامت بفرما برزمندگان و مدافعان حرم پیروزی عنایت بفرما به جانبازانمون سلامت عنایت بفرما انا احسن الحديث و ابلغ کتاب الله العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم السلام علیکی یا بنت رسول الله، السلام علیکی یا بنت بلال الله، السلام علیکی یا بنت موسی بن جعفر اشرعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بار الخلاين قاجمئين. و نسلی و نسلم على حبیبه و نجیبه محمد صلی اللہ علیه و آله و آله اللهم صلی اللہ علی مولانا امیر المؤمنین علی بن طالب و علی فاطمه سیده وعلى الحسن والحسين سيد الشباب اهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقير وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتزى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي بن محمد الحاضي وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي خججك على عبادك وؤمنائك في بلادك بهم نتبلا ومن عدائهم نتبرع إلى يوم القيامة عباد الله وسيكم نفسي بتقبل الله قال مولانا أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتق الناس من قال الحق شي ماله و عليه بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام سخنی را از رسول خاتم نقل میکنند و آن سخن عبارت از این است که پیامبر اکرم فرمود با تقوا ترین مردم کسی است که همباره رایگوی حق به نفع اوست و هم در جایی که حق به ضرر اوست پایبندیه به حق چه به نفع انسان و چه به ضرر انسان این نشانه با تقوی انسان هاست در خدبه دوم طبق معمول به بیان مناصبت ها و نکاتی چند اشاره می کنم امروز که روز 24 و ماه زیحجه هست دو سه مناسبت کوتاه هست که با اشاره می کنم اولین مناسبت امروز روز نزول آیه شریفه تطهیر است. چه آیه ارزشمندی در حق پیامبر امیر المؤمنین فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین سلام الله علیه مجمعین اینما يريد الله لیده بانکم الرشس اهل البيت و یتحرکم خداوند در این آیه شریفه این انوار پاک را از هر نوع رشس و پلیدی، مسن و محفوظ می‌دارد مناسبت دوم آیه ولایت در این روز نازل شده آیه‌ای که در حق مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام است انما ولیکم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه و هم راکعون. که در حالت نماز امیر امیرالمؤمنین اون انگشت رو به سائل بخشیدن و بعد پیامبر به امیرالمؤمنین فرمود چه کرده امروز که این آیه نازل شد شرح ماجرا را بیان کرد بیان عظمت امیرالمؤمنین است و مناسبت سوم در امروز روز مباهله است در سال دهم هجرت پیغمبر هیئتی را برای تبلیغ به نجران فرستاد به سوی نصارای نجران مسیحیان نجران اونها هم تقاضای ملاقات با پیغمبر کردن گفتگو طولانی شد بین پیغمبر و بین نصارای نجران یعنی نمایندگان اونها آیه نازل شد حالا که اینا زیر بار حق نمیروند با حق فاصله دارن پس اقدام به مباهله کنید معنای اجمالی مباهله یعنی حالت تزرو و ابتحال پیدا کردن دو طرفی که هر دو خود را کاملا حق میبینن و تردیدی در حقانیت خود را ندارن می کنند حالت ابتحال به درگاه خداوند دارند بعد بر اساس آیه نفرین کنند یک دیگر را هر کدام این نفرین در حق او روا شد معلوم می شود او بر باطل است و طرف مقابل بر حق است صحنه سحنه عجیبی بود اونا اعلام آمادگی کردن رسول الله اعلام آمادگی کرد ولی صحنه تماشایی لحظه ای بود که پیامبر اکرم امیر المؤمنین صدیقه تاهر امام حسلات به خدم به حشم آمدن برای مباهله و صفوف نجران تا این چهره ها را دید گفت اگر اینها نفرین کنند ها از جا کنده خواهد شد و یک نفر مسیحی در دنیا باقی نخواهد مند اعلام انصراف کردن گفتن ما وارد این میدان نمی‌شویم. آیه مباهله فمن حاج فیه من بعد ما که من العلم فقل تعالو ندعو ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم سم نبتهل نبتهل یعنی همون مباهله فنجع لعنت الله على کاذبین مناسبت دوم است مربوط به فردا روز بیست و پنجم زی حجه که باز مربوط به شرافت اهل بیت است نزول سوره حلعتا در حق پیامبر و امیر و فاطمه زهرا و حسنین اون هم به خاطر اون اقدام ارزشمندی که انجام دادند به یتیم و مسکین و اسیر کمک کردند ما قدر اهل بیت را باید بدانیم این همه در قرآن مورد تکریم و انایتند مناسبت دیگری که باز مربوط به فرداست بیسپنجوم شهریبرد عنوان روز خانواده و روز بازنشستگان است امروز تو دنیا یکی از مسائل جدی و مهم و بحرانی مسائل خانواده است خیلی از خانواده ها تو دنیا دچار فروپاشی شدند خانواده که باید سکینه و آرامش و عاطفه و احساس در اون حاکم باشد تقریبا باید بگوییم خبری از این مقولات نیست اون چه هست گسست خانواده هاست. رابطه پدر فرزند رابطه زن و شوهر و سایر ارتباطات اجتماعی از بین رفته و من به شما عرض بکنم شما خیال نکنید اینا مال دنیاست و ما خبری نیست. این آمار طلاق های جامعه ما زنگ خطر جدی است. تو جامعه ما آمار طلاق بسیار بالاست و زیبنده یک نظام اسلامی نیست هم متولیان فرهنگی هم مسئولین اداره کشور باید فکری کنند اندیشه کنند راهکارهایی را بیندیشند که خانوادهها اون گونه که اسلام میخواهد و در تراز برنامه ها و آموزههای اسلام است شکل بگیرد نکته دیگری که میخوام بشه اشاره کنم که این روزها زیاد شنیده اید شاید در بعضی از مواقع بی اختیار عشق ریخته اید متعلم شده اید نگران شده اید این فاجعه است که امروز در میانمار در حال رخ دادن است مسلمانان بیپناه را فرزندانشان را مادران را می کشند قتل عام را انداختند حدود 400 هزار نفر آواره شدن خانه و زندگی و کارشانشون را با آتش می کشن بعضی ها ممکنه شما بزرگواران خیال کنید یک نزاع بین مسلمانان و بین یک مجموعه بودایی و گروه های این شکلی است. نه این حرفا نیست به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون این قضیه دقیقاً یک قضیه سیاسی است چون دولت پای کاره ارتش پای کاره این گونه نیست که یک گروه درگیره با مجموعی از مسلمانان باشد این خانم گیرنده جایزه صلح نوبل سوچی که آبروی صلح نوبل را برد و به تعبیر رهبر عزیزمون فرمود فاتحه جایزه صلح نوبل با این اقدامات بی شرمانه اینها خونده شد اینها دست به جنایت های سنجینی میزنن و البته کارنامه صلح نوبل اگر این روزها تحلیلها را دیده باشید به چهره‌های داده شده که عمدتاً تو کارنامه اینها جز خیانت و جنایت یا لاقل اکثر اینها کسانی هستند یا لشکرکشی کردند یا قتل عام را انداختند و بعدم تشویق شدند و بینها بی جایزه صلح نوبل دادن خب با حقوق بشر آمریکایی و این شکلی بهتر از اینم از کار در نمیاد مسئله جایزه صلح نوبل باید افسوس خورد به این جامعه ای که سردمدارانش اینها هستند نکته دومی که وجود داره و بسیار غمباره، این جنایت ها در مقابل دیدگان جهانیان و مجامع بین المللی اتفاق می افتد سازمان ملل با بی‌شرمی در ضمن دو خط فقط محکوم می کند آیا کار شما همین است متاسفانه کشورهای اسلامی به بیعملی و بی باید شناخته بشوند سازمان کنفرانس اسلامی چرا غائب است چرا کاری نمی کند چرا بلاخره البته من میخوام بگم خیلی از کسانی که تو این کنفرانس سازمان کنفرانس اسلامی هستن خودشون در توته های آدمکشی اونم مسلمانان شریکن حالا ما انتظار داریم به مسلمانان میانمار برسن اینها تجهیز کننده داعشن اینها امکانات در اختیار داعش قرار میدن و سازمان کنفرانس اسلامی هم در دست اینهاست متاسفانه اداره شود. من فقط یه نکته راجب خودمون عرض میکنیم خودمون یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی که در هر جای دنیا این نظام به عنوان یک نظام ضد ظلم ضد استعداد شناخته شده است انتظاری که مردم ما دارن انتظاری که عزیزان ما دارن اینه که یک گام جدیتر گرچه در صحبت مسئولین محکومیت وجود داره اقداماتی هم انجام دادن ولی امروز جمهوری اسلامی در این صحنه مظلومیت مسلمانان به نظر باید پرچمدار بشود و به تمام مجامع بین المللی شکایت کند و کشورهای اسلامی را برای رسیدگی به این مظلومان آماده کند. در این هفته رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مسلهات دیداری با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب داشتند. حقیقتا نکات برجسته‌ای در فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح شد مجمع تشخیص دارای جایگاه مهمی است از ابتکارات و مطالبی است که حضرت امام پایگزار آن بوده رهبری سه وظیفه کلیدی و اساسی برای مجمع تشخیص مسلحت مطرح کردند یک عبارت از تشخیص مصلحت اسمشم تشخیص مصلحت هست. دو مشاور دادن به رهبری در رابطه با سیاست های کلی نظام و نکته سوم ارائه راه حل در رابطه با مسائل کشور این سه نکته کلیدی است. تذکراتی که رهبری فرمودن تذکرات مهمی است که اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بیش آمد و مجمع تشخیص بر اساس مصلحت نظر مجلس را بر نظر شورای نگهبان ترجیح داد اینجا اولا اعضای شورای نگهبان تو اون جلسات باید حضور داشته باشن و ثانیا اون مسلحت اون چنان قوی و قرص باشد که جای شک و شبه نباشد و با اکثریت قاطع و قابل قبول به تصویب برسد و نکته مهمتر اینه که مسلحت عمددار و مدتدار است مسلحت برای یک امر طولانی مدت نیست منطقه های مراتب همون مسلحت هم باید از حالت روزمرگی در بیاد و جهات مختلف و نکته مهمتری که رهبری فرمودن این است که این گونه نباشد که مجلس قانونگزاری کند دولت برنامه ریزی کند دستگاه قضایی برنامه داشته باشد همه اینها جدای از سیاستهای کلیه نظام که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب می شود باشد بلکه این سیاست ها باید در قوانین مجلس در تصمیمات دولت در تصمیمات قوه قضاییه تبلور پیدا کند این کار مورد انتظاری است که رهبری فرمودند دو مطلب کوتاه هم عرض میکنم و دعاتون کنم مطلب اول ما در آغاز سال تحصیلی هستیم خوشبختانه حوزه های علمیه به صورت رسمی اعلام کردن اعلام شد درس های حوزه چه در قم چه در شهرستان ها شروع شده انتظاری که از حوزه ها میرود در این سال تحصیلی پایبند بودن به نصایح مقام معظم رهبری مراجع بزرگوار تقلید توجه به نیازهای جامعه و حوزه‌ای که با تحبلات زمان خودشو همگام کند و همراه کند خروجی های حوضه ما باید انسان های ملا عالم دانشمند و متخلق به اخلاق و زمانشناس و مسئولیت پذیر باشند. این دیجگیست که ما در رابطه با حوزه ها داریم ما سر سفره بزرگان نشسته ایم بزرگانی که آمدن درس گفتن، بحث داشتن کتاب نوشتن و برای آیندگان نیز ما باید برنامه کنیم در رابطه با مدارس من اول یه نکته ارز بکنم خوشبختانه امروز مسئله بیستوادی در کشور ما کاملا رو به کاهشه من آماری را در اینجا دارم که این آمار ارز می‌کنم. در اوائل انقلاب 48 درصد مردم ما با سواد بودند و الان نزدیک 90 درصد در این حال که جمعیت کشور ما دو برابر جمعیت اول انقلاب و این نشانه افتخار نظام جمهوری اسلامی است اما مسئولین آموزش و پرورش باز هم احساس میکنن همون درصد کم به پایین هم باید بیان و در نتیجه در کلاس های دانش آموزی شرکت کنن و بهره ببرن معلمان عزیز ما باید مورد حرمت دانش آموزان حرمت اولیا حرمت جامعه و مورد تکریم دولت قرار بگیرند عمرشون را اینها در راه فرا دانش آموزان سرف میکنند و خروجی کار معلمان ما همون گونه که رهبری بارها فرمودند افرادی متحد شجا و مسئولیت پذیر باشند دانشگاه های ما خوشبختانه رشد قابل قبولی کردند. ما از دانشگاه ها تولید علم می خواهیم ما از دانشگاه ها انتظاری که داریم عبارت از این است که دانشگاه های ما دانشبنیان باشند و این تولید علم به تولید ثروت بینجامد اگر دانشگاه های ما تولید علمشون به تولید ثروت منجر شد اون موقع دانشگاه های ما به رسالت اصلیشون عمل کردن امروز تعداد دانشیان ما کم نیست این دانشیان عزیز ما نباید بیکار باشند. باید در یک شرایط و خصوصیاتی دانشگاه های ما بتونن تو مسیر واقعی قرار بگیرن. آخرین جمله ماه محرم در پیشه و انشاالله امیدوارم هم گویندگان مذهبی ما. محمدداهان اهل بیت در نتیجه با محرم و با کربلا و با آشورا به ای عمل کنند که جامعه دینی ما کربلایی و آشورایی بشود درس‌ها و پیام‌های آشورا برای ما سازندگی دارد حریت را آزادگی را از کربلا می‌دانیم و می‌شناسیم تکلیف باوری و تکلیف مهوری را ما از آشورا باید فرا بگیریم و در نتیجه آشورا به ما می آموزد سازش ناپذیری در مقابل دشمن و عزتمندی در مقابل دشمنان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قناعذاب نار پروردگار را بیامرز به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما خیرات و برکاتت را بر ما نازل بگردان در فرج مولایمان تعجیل بفرما پروردگار توطئه‌های دشمنانمون را به خودشون برگردان مسلمانان عزیز و محروم ما را از شر دشمنان نجات بده ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصَلِّ ربك بنحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم